دوستان، آیا قوانین خدا واقعا مهمن؟ باید باشن، چون که موسا اونها رو دوباره ذکر کرده. در کتاب تسنیه قبل از اینکه بنی اسرائیل وارد سرزمین وعده بشن، موسی اونها رو براشون تکرار کرده. دوستان، اگه امروز ما به نقطه رسیدیم که میخواییم دارایی های روحانی من رو تصرف کنیم و وارد سرزمین برکت روحانی بشیم، سرزمین وعده که خدا برای هر ایمانداری در نظر گرفته این کتاب امروز پیام قدرتمندی برای من و شما داره در ادامه بررسی عهد قدیم برای دومین بار به کتاب تصنیه اومدیم همونطور که در جلسه قبلی گفتیم کتاب تصنیه تکرار است که خدا توسط مرد خدا موسا در کوه سینا به قوم خودش داد این فرامین با کاربردهایی در کتاب تسنیه تکرار شده و کتاب تسنیه نامش را از همین گرفته. در زبان عبری کلمه تسنیه یعنی بازگو کردن یا تکرار کردن شریعت هست. همونطور که دیدیم این کتاب چیزی بیش از تکرار و بازگو کردن فرامین هست. اون بیان فرامین به نسل دوم قوم خدا هست. نسل اول در بیابان مردند، حالا، نسل دوم باید قبل از اون که وارد سرزمین کنعان بشن این فرامین رو بشنوند نصیحتی که در کتاب تسنیه برای نسل دوم قوم خدا هست این کلام رو به اونها یاد میده تا اونها کلام رو به نسل سوم قوم خدا یا به فرزندانشون یاد بدن اونها رو راهنمایی میکنه و اهمیت آموزش حقایق رو از نسلی به نسل دیگه گوشزد میکنه حالا که دوباره به کتاب تسنیه اومدیم بذارید تمثیل نجات رو که از کتاب آغازین کتاب مقدس ادامه داره یادآوری کنیم. در کتاب پیدایش ما نیاز به نجاتمون رو دیدیم. منشه نجاتمون منبع بزرگ نجاتمون که خود خدا هست. در کتاب پیدایش ما منبع نجاتمون رو در شخصیت خدا دیدیم و فهمیدیم که منشه مشکل گناهمون در شخصیت انسانه به عبارت دیگه در خود ما هست. در کتاب خروج وقتی که بنی اسرائیل از سرزمین مصر آزاد میشند ما تصویر بزرگی از نجاتمون رو داریم اون رهایی ما از گناه رو به تصویر میکشه اونها مقرر بود که از مصر برن از بیابان عبور کنن که حدود یازده روز طول میکشید تا وارد سرزمین کنعان بشن سرزمینی که خدا براشون محیا کرده بود زمینی که به سرزمین وعده معروف بود پیام ترسناک کتاب اعداد این بود که اونها به خدا اعتماد نکردند اونها به مدت چهل سال دور خودشون چرخیدند یک نسل کامل در بیابان مردند اونها در چرخه بی سرگردان بودند به طور کاربردی این تمثیل نجات بسیاری از مردم هست که از بردگی گناه رها میشن و وارد سرزمین وعده برکات مسیحی و زندگی مسیحی نمیشن بلکه برعکس در چرخه ای از شک دور خودشون میگردند به این وسیله در حالی که تمثیل نجات ادامه پیدا میکنه ما با خودمون در کتاب اعداد روبرو میشیم کتاب لاویان به ما نشون داد که ما برای هدفی آزاد شدیم. ما برای هدفی نجات یافتیم و اون هدف شناخت و پرستش خدا هست. کتاب لاویان میگه شخصی که از مصر آزاد شده یا از بردگی گناه نجات یافته میدونه چطور خدایی رو که او رو نجات داده بشناسه و بپرسته. کتاب تصنیه همونطور که در جلسه قبلی گفتیم واقعا کتاب موعظه و نصیحت هست. به اعتقاد من اون کتاب مجموعه ای از نسایهیه که توسط موسا در طی دوره های مختلف به قوم خدا داده شده اونها در شرق رود اردن اردو زدن و آماده هستند که به زمین کنعان حمله کنن کتاب تصنیه کتابیست هاوی تشفیخ های بزرگ معایزه بزرگ که این قوم رو در آستانه حمله به کنان و تکمیل و تجربه هدف نجاتشون به چالش میکشه دوباره به طور کاربردی نجات در کتاب تصنیه برای من و شما هست اگر ما از مصر روحانیمون نجات پیدا کردیم اگر ما از سرگردانی در بیابان ناباوری و سرخوردگی خسته شدیم اگر ما واقعا با ایمان تمام چیزی رو که خدا برای ما داره نمیطلبیم و اگر بالاخره به نقطه ای رسیدیم که می‌خواهیم دارایی‌های روحانی خودمون رو تصرف کنیم و به سرزمین برکات روحانی که خدا برای هر ایمانداری تدارک دیده وارد بشیم پس کتاب تسنیه با تمام تشویقها و نصایحش برای ما کاربرد داره اینها آخرین سخنان موسی به قوم خداست کسانی که مدت طولانی اونها رو هدایت کرد و اونها رو خیلی دوست داشت کسانی که برای بخشش و نجات اونها بارها و بارها نزد خدا شفاعت کرد اگر ما می‌خوایم وارد سرزمین وعده تجربیات مسیحی بشیم های زیادی از های بزرگ موسی در کتاب تسنیه برای خودمون پیدا خواهیم کرد با این دیدگاه از کتاب تسنیه میخوام که بعضی از این معزه های بزرگ موسی را با هم ملاحظه کنیم به اعتقاد من موسا واعظ بزرگی بود و این معزه ها بزرگترین معزه هایی هستند کتاب کنون شنیده ایم واعظین هم میتونن اینو تصدیق کنند و این معهزه ها رو بکنند. بعضی از بزرگترین معزه های کتاب مقدس در کتاب تسنیه هست اولین معزه ای که میخوایم ضمن مطالعهمون بررسی کنیم در باب نخستین کتاب تسنیه هست اون در واقع چکیده تاریخ قوم یهود از دیدگاه موسا با الهام روح القدس است. تاریخ یهود خودش موضوع جداییه. وقتی ما کتاب تصنیه آخرین کتاب تورات رو تموم بکنیم، مطالعه کتاب‌های تاریخ عهد قدیم رو شروع خواهیم کرد. ما تاریخ یهود رو مطالعه خواهیم کرد. اون موضوع گسترده ایه. اون یکی از موضوعات سخت در دانشکده الهیات هست. تاریخ یهود چندین بار در کتاب مقدس به صورت خلاصه آمده. وقتی که استفان در اعمال باب هفت خطابش رو میخونه، خلاصه چشمگیر و واضح و دیدگاهی مختصر از تاریخ یهود به ما میده. در بابهای اول کتاب تسنیه، موسا تاریخ قوم یهود رو تا زمان زندگی خودش خلاصه میکنه. وقتی خلاصه موسا رو میخونید، خواهید فهمید که از نقطه نظر موسی چه چیزهایی مهم بود و الهام روح القدس درباره اون دوره از تاریخ قوم یهود چی بود؟ خیلی مهمه که این چکیده مختصر رو بخونید چون که به شما دیدگاهی از تاریخ قوم یهود رو میده و به شما نشون میده که واقعا چی مهم بود یکی از مهمترین چیزهایی که موسا روش تاکید میکنه اینه که چطور خدا با او رفتار میکنه و چطور با قوم خدا در خلال تجربیات زندگی اونها رفتار میکنه این نقطه نظر مهمیه که در نخستین اظهارات موسا در کتاب تصنیه مشاهده میشه که باز هم خلاصه ای از تاریخ قوم یهوده نصیحت معکدی هست که در سرتاسر سر کتاب تصنیه برای اطاعت از فرامین خدا می‌بینید. شما در این خلاصه و چکیده تاریخی میبینید که وقتی اونها از فرامین خدا اطاعت کردند، خدا اونها رو برکت داده. وقتی از فرامین خدا اطاعت نکردند، زیر لعنت خدا قرار گرفتند. موسی به این اشاره کرده و اونها رو تشویق کرده که از کلام خدا اطاعت کنن. این نصیحت برای اطاعت در سرتاسر سر کتاب تسنیم دیده میشه. یکی از کلمات کلیدی کتاب اطاعت و دیگری محبته. شما فکر میکنید که در این قسمت از عهد قدیم محبت موضوع موثری نبوده اما اینطور نیست. در این کتاب بارها به محبت اشاره شده. مخصوصا در نصیحت موسا که میگه خدا رو با تمامی دل محبت کنید. محبت موضوع بسیار مهمی در این کتاب هست. سخنان بزرگ دیگر موسا به دنبال خلاصه تاریخ قوم یهود هست. این در باب نخستین کتاب هم دیده میشه و تا باب چهار ادامه پیدا میکنه. این موعظه قوم رو نصیحت میکنه که از کلام خدا اطاعت کنن و کارهایی رو که خدا برای اونها کرده هرگز فراموش نکنن. کاربردهای اساسی در این سباب چکیده تاریخی عبارتند از یک یادتون باشه که خدا چطور در خلال تجربیاتتون کار کرده؟ موجزاتی که انجام داده به یاد بیارید؟ نصیحت باب چهار در این معجزه زیبا اینه که معجزه های او تأثیری عمیق و پایدار در زندگی های شما داشته باشه و با فرزندانتون در مورد این معجزات صحبت کنید. بعد نصیحت بزرگ دیگه ای هست که اونها رو از شکستن پیمانشون با خدا من میکنه. ما میتونیم کلمه عهد رو به کار ببریم. عهد پیمانی است که بین خدا و قومش منعقد میشه. مفاد اون پیمان با جزئیاتش شرح داده شده اگر قوم مفاد اون پیمان رو اجرا نکنن پیمانی نخواهد بود اگر اونها اطاعت نکنند، خدا مسئول نیست که به اونها برکت بده پس این اقدار بزرگیه هرگز عهدتون رو با خدا نشکنید ما اونو اینطور این میگیم این اندیشه ای عالی برای امروز هست. یهوه خدای آسمان و زمین هست و غیر از او خدای دیگری نیست شما باید قوانین او رو اطاعت کنید این تا حدودی برای ما این تصور رو پیش میاره که این موعظه به طور کلی در روزهای پیدرپه‌ی انجام شده. شاید موعظه او در روز خاصی بوده. باب پنج یکی دیگر از های تعیین کننده در کتاب تصنیه هست. این تا حدودی برای ما این تصور رو پیش میاره که این موعظه به طور کلی در روزهای پیدرپه‌ی انجام شده. و یا شاید موعظه او در روز خاصی بوده. باب پنج یکی دیگر از باب های تعین کننده در کتاب تسنیه هست. باب پنج تکرار ده فرمان هست. این کتاب در واقع همینه. بازگویی و تکرار فرامین. اگر جملات فرامین رو در کتاب خروج و با بازگوی فرامین در کتاب تسنیه باب پنج مقایسه کنید، اینجا کاربورت هایی رو مشاهده می کنید که در کتاب خروج باب بیست نبودند و دوباره نصیحت اینه. کاش که دلی را مثل این داشتند از من میترسیدند و تمامی اوامر مرا در هر وقت به جا می آوردند تا ایشان را و فرزندان ایشان را تا به ابد نیکو باشد. اینجا نصیحت بزرگ تسنیه هست که موسا برای قوم مایزه کرد. باید فرامین یهوه خدای خود را اطاعت کنید و با تمام جزئیات از او پیروی کنید و از راهی که شما را در اون هدایت کرده حرکت کنید. فقط در این صورت هست که میتونید زندگی کامیاب و عمر درازی داشته باشید. این بزرگترین پیغام کتاب تسنیه هست. شما باید در تمام مسیر با خدا حرکت کنید. و هر چیزی که خدا بر طبق اراده اش سر راهتون قرار میده انجام بدید. این کلید برکات خداست. اطاعت. در جلسه قبلی ما روی بزرگترین سخنان موسا در تصنیه زمان زیادی رو صرف کردیم. سخنانش در باب که مبنای اعتراف ایمان یهودی هست علمای یهودی به خاطر کلمه شنیدن در زبان عبری بهش شما میگن این نصیحت بزرگ با این کلام آغاز میشه بشنو ای اسرائیل چون کلمه شنیدن در زبان عبری شما هست به این دلیل این معزه بزرگ موسی رو شما میگن علمای یهودی بر این که این بزرگترین چیزیه که موسی گفته ما دیدیم که منظور از این نصیحت این بود که به نسل دوم قوم خدا بگه که این ارزش ها رو به نسل سوم قوم خدا منتقل کنن. ما در جلسه قبلی اینو با جزئیات شهر دادیم. وقتی به بچه های خودمون فکر میکنیم ما مبانی اساسی چیزی رو که بهش تعلیمات مسیحی می گیم، از این موزه زیبای موسی متوجه میشیم. اون مبنای یک دوره تعلیمی هست. در جلسه قبلی گفتیم که اولین اساس تعلیم مسیحی بر مکاشفه بنا شده اگر می به فرزندانتون تعلیم بدید که خدا رو محبت کنن پس مبنای تمام تعالیمی که می به فرزندانتون بدید باید از کلام خدا باشه تعالیم موسا دقیقا اینه خدا هست و اگر اصلا خدا هست پس خدا همه چیزه خدا مطلقه در فلسفه ما سوالی می پرسیم. آیا هیچ چیز مطلقی وجود داره؟ یا اصلا چیزی به نام مطلق وجود داره؟ موسا در طی این دوره آموزشی به ما میگه خدا مطلق شما هست. خدا مطلقه. و این خدای مطلق چیزی گفته. هر چیزی که خدای مطلق میگه مطلق هست. بنابراین اگر خدای مطلق کلامی مطلق به شما میده پس اخلاقیات مطلقی هم هستند که باید به فرزندانتون تعلیم بدید. عقیده موسی اینجا, اینجا اینه که خدای مطلقی هست. کلام مطلقی هست. بنابراین راه های مطلقی هست که فرزندانتون باید در اونها گام بردارند. محبت خدا و اطاعت خدا بدون داشتن رابطه با فرزندان امکان نداره. موسی اینا اینطور شهر داده: "به وقت خوابیدن و برخاستن، هینه نشستن در خانه، رفتنت به راه، کلام خدا را به پسرانت به دقت تعلیم ده." موسی مخصوصا این معموریت رو به پدران میده وقتی که میگه بذارید این کلام در قلب شما ساکن بشه و بعد اون رو به پسرانتون تعلیم بدید به اعتقاد من موسا اینجا بسیار بر اینکه پدران باید در این تعلیم سهیم باشن تاکید میکنه اگر فرزندان فقط از یک زن در مورد خدا یاد بگیرن اون موقع تعجبی نداره که وقتی بزرگ شدن فکر کنن که خداشناسی شناسی فقط برای زنان و کودکان است چون اون هرگز چیزی راجع به خدا شناسی مگر از یک زن او هرگز نشیده که پدر این چیزها را به او تعلیم بده شاید مهمترین قسمت و اون فرمول زیبا یا دوره تعلیم اساس چهمی هست که این تعالیم بر اونها بنا شده که بهش واقعیت گفتیم که بچه ها بیش از هر چیز دیگه ای به یک الگو نیاز دارن چیزی که احتمالاً بسیاری از مردم رو از خدا و کلام خدا روی گردان میکنه. شاید کسی کلام خدا رو به فرزندش درس میده که احتمالاً در زندگی خودش واقعیت نداره. مردم کلام خدا رو به کسانی درس میدن که، این چیزها در زندگی اونها واقعیت نداره و هیچ تجربه ای از خدا و تجربه ای واقعی از کلام خدا در زندگیشون ندارن. این ناهماهنگی در زندگی بچه ها وجود میاره. این اونها را از خدا دور میکنه. اونها را به خدا جذب نمیکنه. خب پس تأکید در مععزه موسی برای شما والدین اینه که کلام خدا باید برای خود شما واقعیت داشته باشه. این کلام باید در قلب شما جا بگیره منظور از این دوره تعلیمی اینه که نسلی به بار بیاره که خدا رو با تمامی قلبشون محبت کنن و با تمامی دلشون از خدا اطاعت کنن و با تمام وجودشون خدا رو خدمت کنن. این امکان نداره که شما چون این فرزندانی به بار بیارید مگر اینکه که نمونه چیزی رو که تعلیم میدید در زندگی خودتون به فرزندانتون نشون بدید. اون نمونه پیغام شما هست. این مهمترین بخش این دوره آموزش هست. این پیغام در باب هشت کتاب تصنیه با معزه ترسناک دیگری از موسا ادامه پیدا میکنه. تمام معزه هایی که موسا کرده بزرگ هستند. باز هم این ای راجع به کلام خدا و اهمیت اطاعت از کلام خدا است. اما یک دیدگاه اضافی هم اینجا هست. در باب هشت آیات یک تا چهارده معزهی راجع به کلام خدا هست و اینکه چطور کلام خدا را یاد بگیریم. او در این آیات میگه، تمامی اوامری را که من امروز به شما امر میفرمایم حفظ داشته به جا آورید تا زنده مانده زیاد شوید و به زمینی که خداوند برای پدران شما قسم خورده بود، داخل شده در آن تصرف نمایید. این بارها در این کتاب تکرار شده. به این نصیحت در مورد کلام خدا گوش کنید و به یاد آور تمامی راه را که یهوه خدایت تو را در این چهل سال در بیابان رهبری نمود تا تو را زلیل ساخته بی و آنچه را که در دل توست بداند که آیا عوامر او را نگاه خواهی داشت یا نه و او تو را ذلیل و گرسنه ساخت و من را به تو خورانید که نه تو آن را می دانستی و نه پدرانت می دانستن. او این کار را کرد که کمک کنه بفهمید که قضا همه چیز نیست و زندگی حقیقی با اطاعت از کلام خدا ادامه پیدا می کنه. تا تو را بیاموزاند که انسان نبینان تنها زیست می کند بلکه به هر کلمه ای که از دهان خداوند ساطع شود انسان زنده می شود در ادامه این بخش چیزهای دیگری میگه از جمله اینکه در این چهل سال لباس تو در برت مندرس نشد و پای تو آماس نکرد پس در دل خود فکر کن که به طوری که پدر پسر خود را تعدیب می مینماید یهوه خدایت تو را تعدیب کرده است و اوامر یهوه خدای خود را نگاه داشته در طریقهای او سلوک نما و از او بترس زیرا که یهوه خدایت تو را به زمین نیکو در می‌آورد زمین پر از نهرهای آب و از چشمه‌ها و دریاچه‌ها که از دره‌ها و کوه‌ها جاری می‌شود زمینی که پر از گندم و جو و مو و انجیر و انار باشد زمینی که پر از زیتون و زیت و اصل هست زمینی که در آن نان را به تنگی نخواهی خورد و در آن محتاج به هیچ چیز نخواهی شد زمینی که سنگ‌هایش آهن است و از کوه‌هایش مس خواهی کند و خورده سیر خواهی شد و یهوه خدای خود را به جهت زمین نیکو که به تو داده است متبارک خواهی خو. خواه. پس برحذر باش مبادا یهوه خدای خود را فراموش کنی و عوامر و احکام و فرایز او را که من امروز به تو امر می‌فرمایم نگاه نداری. مبادا خورده سیر شوی و خانه های نیکو بنا کرده در آن ساکن شوی و رمه و گله تو زیاد شود و نقره و طلا برای تو افسون شود و مایم نه تو افزون گردد و دل تو مغرور شده، یهوه خدای خود را که تو را از زمین مصر از خانه بندگی بیرون آورده فراموش کنی این موعظه بزرگ تسنیم باب هشت به ما اولا اهمیت کلام خدا رو میگه این خیلی مهمه که ما کلام خدا رو درک کنیم خدا کلامش رو به ما داده و به ما میده که ما بدونیم چطور زندگی کنیم خدا یک سادیس نیست که اون دورها نشسته باشه و تمامی این قوانین رو وضع کنه که ببینه چقدر میتونه ما رو بدبخت کنه تمامی کلام خدا و تمامی فرامین خدا از قلب مهربان خدا به خاطر انسان و سعادت انسان سرچشمه گرفته. وقتی خدا کلامش رو به انسان میده به خاطر محبت توی قلبش است. خدا میدونه مفهوم زندگی چیه. خدا خالق زندگیه و او میدونه که ما چطور میتونیم زندگی موفقی داشته باشیم. عیسی اومد که بگه من آمدم که انسانها به فراوانی حیات یابند. شما این فراوانی حیات رو چطور به دست میارید اگه واقعا میخواید تمام اون رو به دست بیارید شما دلتون نمیخواد فریب بخورید و یا چیزی رو از دست بدید کلام خدا میگه که به کلام خدا نزدیک بشید چون اگه حیات واقعی میخواید، باید به کلام خدا نزدیک بشید و از هر کلامی که از دهان خدا خارج میشه اطاعت کنید اینجوری حیات واقعی خواهید داشت معنی این گفته اینه که مفهوم کلام خدا زندگی هست همین طور منظورش اینه که اگر میخواهید کلام خدا رو درک کنید دو راه هست که میتونید کلام خدا رو مطالعه کنید اولیش اینه که میتونید به همون ترتیبی که ما اینجا مطالعه میکنیم کلام خدا رو مطالعه کنید حتی میتونید به یک مدرسه تخصصی برید یا یک دانشکده الهیات جایی که بتونید در کتاب مقدس متخصص بشید اینجوری میتونید کلام خدا رو مطالعه کنید اما بر اساس این دیدگاه در تسنیه باب 8 این تنها راه مطالعه کلام خدا نیست. در واقع این حتی کافی نیست. اگر مفهوم کلام خدا زندگی هست، پس راه دیگر برای یافتن بینش از کلام خدا مطالعه زندگی هست. به اعتقاد من، کلام خدا به ما نسبت به زندگی بصیرت میده و زندگی نسبت به کلام خدا بصیرت میده. از هرچه بیشتر کلام خدا را بدونید، درک بیشتری از زندگی خواهید داشت. و هرچه بیشتر زندگی رو درک کنید، درک بیشتری از کلام خدا خواهید داشت. منظورش اینه که اگر میخواهید کلام خدا رو درک کنید، شما لازم نیست که به یک صومعه و یا دیر برید و خودتون رو از دنیا جدا کنید. بلکه جایی برید که زندگی حقیقتاً جریان داره. این جاییه که شما به درک کلام خدا نایل میشید این چیزیه که موسا در این موعظه بزرگ راجع به کلام خدا به قوم خدا میگه. موسا از اونها سوال کرد: خدا، کی این کلام رو به شما یاد داد؟ و چطور اون رو به شما یاد داد موسی به اونها یاد میداد که مفهومش فقط این نیست که به خیمه پرستش برن و کاهن اونها رو تعلیم بده واقعا اونجا جایی نبود که خدا کلامش رو به اونها آموخت جایی که کلامش رو به اونها آموخت زمانی بود که اجازه داد که اونها گرسنه بشن تا به سوی او برگردند و بفهمند که خدا منبع معاش اونهاست و اونها را به طور موجز آسایی قضا میده این زمن سرگردانی در بیابان بود. توسط اون تجربیات سخت بود که خدا اونها رو آگاه کرد که انسان تنها با نان یا با برآورده شدن امیالش و برآورده شدن نیازهاش زندگی نمی کنه. انسان با اطاعت از هر کلامی که خدا به او داده زندگی می کنه. اونها کلام خدا رو در یک دانش و یا در صحن مقدس یاد نگرفتن. اونها کلام خدا رو در بوته آزمایش و تجربیات زندگی یاد گرفتند یک تابستان که من آموزش خدمت می دیدم و چهار سال بود که کلام خدا رو مطالعه می کردم، سختترین تابستان زندگیمو میگذرمدم سه هزار مایل از خانهنم دور بودم من با کارهای ساختمانی آسیب دیده بودم و مریض شده بودم یه خانواده منو پذیرفت یک زن خداشناس که معلم کتاب مقدس در اون خانه بود روزی که من کامل افسرده بودم به من گفت دیک، تو چهار ساله که کلام خدا رو مطالعه می کنی، اما من چهل ساله که اونو زندگی می کنم. من خیلی بیشتر از اونچه که تو راجع به کلام میدونی میدونم بزار به اون با حرف بزنم نمیتونید باور کنید که او کاملا دیدگاههایی از کلام خدا به من داد که در هیچ دانشکده ای نمیتونید پیدا کنید او به دانشکده کتاب مقدس نرفته بود بلکه در خلال تجربیات زندگی اون را یاد گرفته بود این جاییه که همه ما میتونیم کلام خدا رو یاد بگیریم این جاییه که باید توقع داشته باشید کلام خدا رو بتونید یاد بگیرید. چون منظور کلام خدا هم اینه که به ما نشون بده چطور زندگی کنیم. چیز دیگه ای که میتونیم از این متن مشاهده کنیم اینه که توسط این موعظه بزرگ خودمون رو در مقابل خطرات فراوانی محافظت کنیم. پولس رسول در نوشتهاش اینطور اهار کرده. معنی نیازمند بودن را میدانم نیز معنی زندگی در وفور نعمت را این چالش بزرگیه. نمیدونم آیا میدونید چطور میشه نیازمند شد؟ میدونید وقتی که با یکی از توافن‌های زندگی مواجه هستید چطور زندگی کنی؟ وقتی که در یکی از اون شرایط سخت زندگی هستید، وقتی که در یکی از اون مراحل مشکل زندگی هستید، آیا میدونید وقتی که اونطور در نیاز هستید چطور زندگی کنید؟ پولس میگه من این سر رو یاد گرفتم که قانع باشم و مهم نیست که در چه وضعیتی هستم. او میتونست که به دیوار یک سیاهچال با زنجیر بسته بشه مثل یک زندان در روم و میتونست بگه که من میدونم چطور در این شرایط زندگی کنم و تغییر بشم اما با این حال میتونست بگه معنی زندگی در وفور نعمت رو هم میدونم من گاهی فکر میکنم اینکه بدونیم چطور در فراوانی و وفور نعمت زندگی کنیم چالش سختتری از اینه که بتونیم در سختی و نیاز زندگی کنیم از مردی به نام چارلز کولسون که رهبر مسیحی بزرگی بود شنیدم که میگه در یک اجتماع سالانه‌ای با جمعی حدود یکصد نفر به همراه زنانشان که با او در زندانها خدمت میکردن بوده او به اونها گفته که برای من دعا کنید چون که از نظر روحانی خیلی غنی هستم من در خدمتم به جایی رسیدم که احساس میکنم غنی هستم جایی که مرتبا از طرف مردم تشویق و تحسین میشم و مردم به رویاهایی که خدا به من داده پاسخ میدن سر پا می و منو تشویق میکنند برای 2500 نفر در یک مراسم دعای صبحگاهی صحبت می کنم و اونها سرپ میستند و منو تشویق میکنن او گفت احساس میکنم که در زندگی روحانی به یک فراوانی رسیدم و این برای من چالش بزرگیه و منو میترسونه. نمیدونم آیا واقعا میتونم چطور در فراوانی زندگی کنم؟ لطفا برای من دعا کنید که خدا منو در فروتنی حفظ کنه که بتونم معنی وفور نعمت رو بفهمم. تا حالا فکر کردید که فراوانی میتونه یک چالش باشه؟ این بخشی از موعظه بزرگ درباره یاد گرفتن کلام خداست. موسا به اونها گفت شما کلام خدا رو چطور یاد میگیرید در بوته تنبیهات خدا بود که یاد میگرفتن وقتی که اونها مجبور شدند که عواقب گناهانشون رو تحمل کنن که نتیجه ناعتاعتی از کلام خدا بود به این ترتیب یاد گرفتن که کلام خدا کلیدی برای زندگیه حالا باز گفته وقتی که در بوته تنبیهات نیستید درسی رو که در بوته تنبیهات خدا یاد گرفتید فراموش نکنید وقتی که به جایی رسیدید که در فراوانی هستید فراموش نکنید که این زمانیه که باید مراقب باشید جایی که مبادا در دل خود بگید قوت من و توانایی دست من این توانگری رو برام پیدا کرده اظهار نظر جالبی که توسط یکی از مبرخان کلیسا به نام کونت شده اینه اگر کلیسای عیسی مسیح کاری رو انجام میده اگر کلیسای عیسی مسیح در زمان موفقیت به دنیا بشارت میده این اولین باریه که در تاریخ قوم خدا چنین کاری انجام میشه قوم خدا وقتی که در کامیابی و فراوانی هستند کاری انجام نمیدن معمولا وقتی اونها در فراوانی و موفقیتن از دین بر برمیگردن و به ابتذال کشیده میشن قوم خدا به نظر می رسه واقعا وقتی که در سختی ها هستن کار انجام میدن کلیسای عیسی مسیح در شرایط سخت در امپراتوری روم در خاک دشمن متولد شد در تاریخ 300 سال اول کلیسا ده موج جفا علیه کلیسا ها وجود داشت کلیسا هرگز تا این اندازه مقاومت نکرده بود کلیسا هرگز تا این اندازه قوی نبوده کلیسا هرگز به اندازه اون موقع زنده نبوده فکر می کنم لازمه که این یادمون باشه و چالش بزرگ موسا یادمون باشه و گفته پولس رو به یاد بیاریم که در نیاز و بی نیازی قانع باشید خدا رو فراموش نکنیم ملاحظه کنید که چطور انبیا و رسولان میگن یادتون باشه یادتون باشه وقتی که در فراوانی هستید خدا رو فراموش نکنید شما معزه های بزرگی رو در کتاب تصنیه میبینید که به دنبال هم میان. موعظه بزرگ ای دیگه دیگه هست که به دنبال این یکی میاد معزه ای که در مورد فیض خدا هست موسی به قوم گفت وقتی خدا شما را به سرزمین وعده برد و به دشمنتون غلبه کردید وقتی خدا این کار رو برای شما انجام داد به خودتون نگید که خداوند به ما کمک کرد چون ما خیلی خوب بودیم، نه. او گفته به این خاطر نیست که شما خیلی خوب هستید. این به خاطر شرارت ملتهای دیگر هست که خدا این کار رو میکنه. نه به خاطر این که شما خیلی عالی هستید. قومی برحق هستید. باز هم میگم او گفت به سبب شرارت این امتهایه و خدایت ایشان را از حضور تو اخراج می نماید. و به خاطر کلامی که برای پدرانت ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده بود این کار رو میکنه. باز هم این را میگویم. این چهار رو بار بود. فکر میکنم اون میخواست که مطمئن بشه اونها متوجه شدن. پس بدان که یهوه خدایت این زمین نیکو را به سبب ادالت به تو نمیدهد. زیرا که قومی گردنکش هستید. خیلی گردنکش. آیا میشد بهتر از این رو ابراز کرد؟ این مفهوم زیبایی در کتاب مقدس هست. این مفهوم فیض هست. فیض خدا فیض خدا معنیش لطف و برکت خدا هست. حتی به شکل عطیه الهی یا قدرت خدا. از هرچی چی که ناشی بشه این لطف و برکت خدا نسبت به ماست که به خاطر نیکوی ما بر ما نمیاد یا به خاطر اینکه شایسته اون هستیم یا اون رو کسب کردیم و به دست آوردیم. هرگز نباید فراموش کنیم. درست زمانی که فکر میکنیم ما این رو یاد گرفتیم در واقع باید بدونیم اون رو یاد نگرفتیم. سالها پیش یک شب شنبه کنترلم را از دست دادم. من کلیسای بزرگی رو شبانی میکردم. ساعت دو نیمه شب بود و یکی از بچه من هنوز به خانه بر نیشته بود. راستش مجبور شدم برم و او رو به خانه بیارم. خیلی عصبانی شدم. کنترلم رو تماما از دست دادم شما فکر نمی‌کنید واز این هرگز عصبانی بشن اما در اون یک شنبه ساعت دو صبح من کنترلم رو از دست دادم فقط چند ساعت دیگه ساعت 11 میشد و من باید جلوی جمعیت انبوهی می ایستادم جلوی تریبون نشستم و به خدا گفتم از این بابت متاسفم اما امروز تو از کار برکنار شدی چون که من امروز صبح این فرصت رو از دست دادم تو امروز نمیتونی کاری بکنی من خیلی متاسفم اما افتضاح کردم و تو نمیتونی کار کنی متن اون روز ما تصادفاً بخشی بود که من قبلاً قدر اون رو به خوبی نمیدونستم اون جایی بود که عیسی مثال فریسی و باجگیر رو تعلیم میداد من هرگز توجه نکرده بودم که عیسی اون مثل رو برای کسانی زده که به خودشون متکی هستن و فکر میکنن پارسا هستند من قبلاً به این توجه نکرده بودم و وقتی که اون روز من اون قسمت از کلام رو با دقت به همراه جماعت خوندم به نظرم رسید که خداوند داره به من میگه تو به این باور داری که عادل و پارسا هستی؟ به این خاطر فکر میکنی که من هفته پیش و هفته قبل از اون که تو وقت خوبی داشتی در کار بودم و حالا تو هفته بدی رو داشتی و من از کار برکنا شدم. خب وایز تو فیض رو درک نکردی. این واقعا چیزی بود که او داشت به من میگفت. پس رفتم جلو و معزه کردم. نمیتونم مثل روح القدس رو که اون روز در اون جلسه بود باور کنم شاید شما واقعاً اینو یاد نگرفتید این متن میگه این به خاطر نیکویی شما نیست به این دلیلی که خدا نیکوست به خاطر اینه که خدا شما رو دوست داره به این دلیل شما رو برکت میده این چیزیه که معنی کلمه فیض و نصیحتی عظیم از فیض است که در باب نه کتاب تسلی میبینید وقتی که به این مفهوم فیض پی ببرید تمام این مفهوم رو در سرتاسر سر کتاب مقدس ملاحظه کنید چون نجات شما همونطور که در عهد جدید شرح داده شده بر مبنای همین مفهوم بنا شده چه حقیقت حیرت انگیزی فیض خدا ربطی به نیکویی ما نداره عزیزان متشکریم که در درس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس با ما همراه بودیم امیدواریم که این درس ها به شما در رشد در درک و ایمان کمک بکنه ترتیبی بدین که جلسه بعد همراه ما باشین و از دیگر عزیزان نیز دعوت کنید که در مطالعه کلام خدا با ما همراه باشند فیض خدا در زندگی شما به فراوانی و فراوانی جاری شود